گاه هاون اشنات اهوره مزداو، اشم و هو و استی اوشتاو استی اوشتا احمایی هیت اشایی و اشم فروران مزده یسنو زرطوشت ریش ویده او اهورا تکه شو هاونه اشعون اشه رتو یسنا ایچه وحما ایچه شناوت را ایچه فرس هسته یعیچه ساونگ هعه ویسیا ایچه اشعون اشه رتو یَس نو ایچا وَحما ایچا خشناو ترا ایچا فراساستا یا ایچا هاونیم اشاونم اشهراتون یزمعیده هاور وتاتم اشاونم اشهراتون امرتاتم اشاونم اشهراتوم یزم آهویریم فرشن ایریم فرشنم اشهراتوم یزم ایده آهو ایریم تکهشم اشهراتوم یزم اشم بهو و هشتم استی بوشتا استی بوشتا احمایی یادشایی اشایی و هشتایی اشم گاه رپیتبین شناوت را مزداو مزده اشم و هو مستی هشتم استی اوشتا استی اوشتا احمایی یت اشایی و هشتایی اشم فراوران مزده یسنو زره توشتریش ویدا و اهور تکایشو رپیت رپیتوینایی اشعونه اشه رتوه یسنایی چه وحمایی چه اشنات رایی چه فرس است یعی فرادت فشبه زنتومائی چه اشعونه اشه رتوه یسنایی چه وحمایی چه اشنات رایی چه فرس است یعی وینم عشاونم اشهيراتوم يزميده احونا وئ گاتام اشعونیم اشهيراتوم یزمیده اوشت وئ گاتام اشعونیم اشهيراتوم یزمیده سپنتا مئنیوم گاتام اشعونیم اشهيراتوم یزمیده وهو خشترام گاتام عشقونیم عشقه راتوم و ایده تو ایشتیم گاتام عشقونیم عشقه راتوم یزم و وهو وحو وحشتم استی اوشتا استی اوشتا احمایی یت اشایی وحشتایی اشم گاه و اشنات اهوره مزده اشم و هو و هیشتم استی اوشتا استی اوشتا احمایی هیت اشایی و هیشتایی اشم فراوران مزده یسنو زرت و شریش ویده و اهوره یسنایی چه وحمایی چه شنات رائی چه, چه فرادت ویرایی دخیومایی چه اشعون اشعه رتوه یسنایی چه وحمایی چه شنات رائی چه فرسست اشهی راتوم یزم ایده ستروش چه مانگ هم چه ور چه رو چه افرسنگ چه چه یا نرش سادر درگ وتو اشم بهو و هیشتم استی اوشتا استی اوشتا احمایی یه دشایی و اشتایی اشم کاه ایوی سروترم اشناتر اهو ره اشم بهو و هیشتم استی اوشتا استی اوشتا احمایی یدشایی و اشتاییشم فروران و زرطوشریش ویدعی و اهورا تکهشو ایبی سرود رمایی عیبی گیایی اشعون اشه رتوه یسنایی چه و احمایی چه اشنات رایی فراس یه چه؟ فرادت ویس پام هو جیا ایت از ای رات هشت رو تمای یه چه؟ آشاآونه آشاهرت و بیاست نای چه؟ وحما یه چه؟ خشناوترای یه چه؟ فراس است یا یه ای چه؟ ای ویس رود ریم عشونم اشهراتوم یزمه ای بیگاییم عشونم اشهراتوم یزمه توام آترم اهوره مزدا فوترم عشونم اشهراتوم یزمیده فرادت ویسبام فرادت ویسپام حوجیائیتیم عشونم اشهراتوم یزمیده زرتوشترم اشابنم اشه نم یزم ایده. مانترم سپنتم اشابنم اشه راتوم اشم و هو و هیشتم استی اوشتا استی اوشتا احمایی هیت اشایی و هیشتایی اشم گاه اوشهین اشناتره اهوره مزداو، اشم و هو و استی اوشتا استی اوشتا احمایی هیت اشایی و هشتایی اشم فروران مزده یسنو زرطوشریش ویده و اهوره تکه شو اوشهینایی اشعونه اشه رتوه یسنایی چه وحمایی چه خشنات رایی چه فرس است یعی چه برژیای نمانیایی اشعون اشه رتوه یسنایی چه وحمایی خشنات رایی چه خشنا یزمیده اوشام سریرم یزمیده اهورم مزدام اشعونم اشهراتوم یزمیده وحو منو یزمیده اشم و هشتم یزمیده خشترم و ایریم یزمیده سپنتام و آرمیتیم یزمیده بره جیم اشوانم اشه راتوم یزمیده بره جه ونگه اوش اشه بره جه دعی نیا ونگه یا مازده است نویش اشم بهو و استی اوشتا استی اوشتا احمایی یت اشائی باشه ای